بسم الله الرحمن الرحيم فس تقسيم واجب بالنظر إلى المطالب به تقسيم واجب بإعتباره مطالب به الواجب بهذا الاعتبار واجب عيني وواجب على الكفاية بفرماية واجب أزين جهة اعتبار بردنه هست يك واجب عيني دو واجب على کفایه خودش تعریف میکنه فالواجب الایریو هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفین واجب الایری آن است که طلب کرده باشد شارع حاصل شدنش را از تک تک از هر یک از مکلفین مثل نمازهای پنج مثل روزه مثل زکات فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه الإقاب ولا يغني عنه قيام غيره به ومثاله الصلاة والصيام وإعطاء كل ذي حق حقه لقد تباشيد بفارمايات واجب اینی آن است که شارع طلب کرده باشد. انجامش را از تک تک مکلفین پس کافی نیست. اگر بعضی اومدن اون کار رو انجام دادند و همه آن رو انجام ندادند، این کافی نیست. بعضی اگر انجام دادند و بعضی دیگر کافی نیست در واجب اینی و از مكلف مکلف بری نمیشه مگر اینکه اون کارو رو کار بکنه انجامش بده از اینجاست که تارکش گناهکار میشود و مستحق عقوبت میشود و انجام اشخاص دیگر و انجام گروهی آن کار را بقیه رو بینیاز نمی کند این که اومدن اون کار رو انجام دادند بین این نیست که پس دیگران می تونند انجامش نداد پس انجام اشخاص دیگر اونهایی رو که انجام ندادن بی نیاز نمیکنه مثالش چیه مانند نباس روزه روزه و دادن هر صاحب حقی حقش حرص صاحب حقی اما واجب کفایی وام والواجب على الكفايه او الكفایی هو ما طلب الشارع من بالجماعه المكلفین لا من كل فرد منهم، فإذا فعله البعض سقط الف... سقط الفرض من الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين بيجواجب كفاي على الكفاية وواجب كفاي، آنس كطلب كرده باشد پروردگار حاصل شدنش را انجامش را از گروهی از مکلفین نه از هر فرد آنها نه از تک تکشان پس در نتیجه زمانی که بعضی از مکلفین اون کارو انجام دادند فرض از بقیه چی میشه؟ ساقط میشه بله ولی زمانی که کسی آن را انجام نداد همه یشان گناهکار میشد. ببینید اگر گروهی اون کار رو انجام داد بقیه از گردنشون ساقط میشه ولی اگر هیچ کس اون را انجام نداد همه چند گناهکارند. پس اینجا هدف این است که خود کاره انجام بگیره. بله. خود انجام کار اینجا مهم است. خود چی مهم است؟ انجام کار. پس به اعتبار مطالبه بر دنو شد. به اعتبار مطالبه بر چندو شد؟ بر و من امثله الواجب الکفایی و مثال‌هایی برای واجب کفایی الجهاد والتفقه في الدين وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة الإسلامية وإعداد القوة بأنواعها. بيجوا مثال هاي واجب كفايتك جهاد، آه، جهاد واجب كفاياس. أقدر حالات خاصة خلصت كخب. والتفقه في الدين. دین رو فرا گرفتن عالم دیدی شدن مجتهد شدن ایجاد کارها و حرفها و علومی که امت اسلامی به آنها نیاز دارد یکی پزشک بشه یکی برای علم کامپیوتر یاد بگیره یکی برای مکانیکی رو خلاصه چیزایی که امت اسلام به اونا اونا فرض کفایه هست آقا باید افرادی بله باید افرادی نباید برن پزشک بشن امت اسلام که مریض شد پس کی اینا رو علاج بکنه نباید گروه از امت اسلام اون شغله رو اون حرفه رو اون رشته رو که تخصوصی اند باید برن یاد بگیرن اینا عبزار هستند از اون جایی که ابزار هستند فرض کفایه میشن مهم اینه که حاصل بشن مهم اینه که چه بشند و مثال دیگر آماده کردن قوت با انواعش فرض کفایه هست که این قوت چه بشه آماده بشه به هنگام حجوم دشمن ریاضیات رو باید یاد بگیرند فیزیک رو باید یاد بگیرند شیمی رو باید یاد بگیرند گروهی گروهی باید علم هندسه و حساب رو باید بگیرند اینا رو میگه چه هستند؟ برنامه نویسی رو آقا یاد بگیرند مکتبت شامل شاملهی مثلا درست میکند در رو درست میکند برن علوم املیت شبکه رو یاد میگیرند سایت هاشون رو دشمن حق نکنه خلاص حرف رو که امت اسلامی با انها دوزده متا یصیر الواجب الكفائی و واجب عین چه زمان میگه واجب کفائی واجب عین میگردد در شماره دوزده همین توضیح همیده که چه زمان واجب کفایه واجب عینی میگردد. یعنی بر تک تک فرض میشه. وقد يصير الواجب الكفائي واجبا عينيا، كما في الجهاد، اذا لم يحصل المقصود به، صار فرضا عينيا على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأي نوع من انواع المحاربة. بیگه وعاهی واجب کفایی واجب ایری میگردد. و قد رو صیرو وعاهی میگردد واجب کفایی واجب چی؟ ایری. همانطور که در جهاد. بیگه زمانی که اون مقصد حاصل نشد. زمانی که در جهاد اون مقصد حاصل نشد. در نتیجه فرض این میگردد بر هر مکلفی که توانایی بر جنگیدن با دشمن دارد هر نوع محاربه که باشد هر نوع جنگی که باشد اینجا آقا اگر جنگ البی اگر جنگ فیزیکی اگر جنگ نرم و جنگ فضای مجازی انواع جنگ هایی که خلاصه وجود دارد الان فرزندین خب اینا بحثای پیچیده ای اصلا متاسفانه کشورا رو مرزبندی کردند این مرزبندی خودش کار خطرناکیه به ضرر اسلام تمام شد آ مثلا فرزند فلسطین و میسنه اسرائیل متاسفانه همه بگن به ما چه ربطی داره آقا فلسطینی ولی قدیم اینطور نبود اگر هر کجای امت اسلام ضربه میدید اسلام اسلام بود دیگه فلسطین و عراق و ایران نمیشناخت اسلام اسلام, اسلام, بود, و و نمیشناخت اسلام, اسلام, اسلام بود ولی الان متاسفانه چکارش کردن مرزبندی کرد و این مرزبندی مرز رو عمدن به ضرر جهان اسلام کرد دوتا مرزبندی به به خیلی شدید به زرر اسلام تمام شد. دو مرزبندی، یکی مرزبندی های جغرافیایی، اینا خیلی به زرر اسلام تمام شد. یکی مرزبندی های مذهبی. شکی مرزبندی های مذهبی؟ آقا، امت رو گروه گروه کردند. امت رو چکار کردند؟ و چونان بیان این گروه‌های اسلامی تعصب به وجود آوردند نه این که نه این که گروه‌ها از همدیگه دفاع نمی‌کنند که هیچ بلکه خودشون همدیگه رو چیکار می‌کنن علیه همدیگه ولی دارکو لگنه وقتی چون اسلام مرز که نداره اصلا اسلام مرز نداره بله کاملا اینجوریه یعنی وقتی فرد عین شده الان جواب در اصل بله در اصل فرد عین در اصل ببینید هر کجا امبت اسلام مورد حجوب قرار گرفت که آنها نتوانستند از اهدش بر, از اهدش بر بیاد کم کم این فرض م... وسیع تر میشه ولی الان کجا و این حرف ها کجا الان خیلی درد ها زیادند الان اولا امبت اسلام نیاز به آگاهی دارد دوما در تعریف خود اسلام اینا با هم اختلاف دارد اصلا یکی از بزرگترین مشکلات امروز تکفیره موقعی که طرف میاد گروه دیگر رو تکفیر میکند خب مسلم است موقعی گروه دیگر زده بشود اون کاری اصلا از اسلامش نمیدونه متاسفانه یعنی دردها ها خیلی خیلی پیچیده و است الان نیازی به آگاهی دهی داریم ما مسلمان ها ببینید مادامی که کلمه اسلام روی یک انسانی اطلاق می شود ولو این که بدعتی باشد خرافاتی باشد ولی باید ازش دفاع کرد باید بشه آگاهی داد باید اصلاحش کرد باید از خرافات نجاتش داد ولی این به این معنی نیست که چون بدعت دارد خرافات دارد مشکلات دارد رهایش کرد و بنده برین این اعتقادم بر این باورم از درون قلب که مادامی که شخص مسلم است جنگیدن با او به عنوان کفر جایز نیست ولی اگه منتصف به اسلام باشه فقط مثلا دیگه ببینید, ببینید. ها؟ خب این ها بحث های طولانیه ولی در هر صورت اسلام با دایره دائره وسیعی که دارد ما معنیش بکنیم و نیدگاه های تنگ های تنگ و ما عتقدیم که اسلام دایره ایست اوسی نمیشه با اختلافاتی فقهی جزئی شخصی رو از دایره اسلام شکار کرد؟ خارجش کرد یا مثل اختلافاتی که بر سر تعویلند طرف اصول رو قبول دارد ها؟ ایمان به پروردگار، ایمان و بحث ایمان رو قبول دارد. بحث ایمان به کتب رو، بحث ایمان به رسالت رو قبول دارد. به سمت قبله ما نماز میخاند. قرآن ما رو قبول دارد. دیگه نمیشه همچونی شخصی رو چکار کرد؟ تکفیر کرد. پس میگه چه زمانی واجب کفایی واجب این میگردد؟ میگه که بله. واجب کفایی واجب این میگردد. گاهی همانطور که در مصاله جهاد است زمانی که مقصد حاصل حاصل نشد میگه فرض اینی میگردد خب و مثله ای زن و مثال و مثلش هست مثل همچنین الطبيب فی القریتی اذا لم يکن غیره تعین عليه اصاف المرضى میگه همچنین طبیبی که در یک روسه ببینید اینجا اصل این است که آغا مریض باید چه بشه مداوا بشه اصعاف بشه ببینید اصل بر این است که مریض چه بشه؟ مداوا بشه. مداوا بشید. هدف شریعت اینجا مداوای شخصی. ولی بگه اگر چنانچه یک طبیب این کارو انجام داد خلاص از گردن بقیه چی میشه؟ اما اگر تو این روسا طبیب دیگه ای نفر بود، خوبه که اینجا برش فرض این میشه دیگه. اینجا نمیگه که آقا خلاص یکی دیگه کار بابا کسی دیگه بارید نیست, نیست. اینجا دیگه فرض چی میگرده فرده. برش عید میگرده آقا تو به شکل تعیین باید بری این رو کنی مداوا کنی خب پس تا اینجای کار خودی فربا